تا چند حدیث پنج و چهاره ساقی، مشکل چه یکی چه صد هزاره ساقی. خاکیم همه چنگ به ساز ساقی، بادیم همه باده بیاره ساقی. تا چند زیاسین و براته بنویس به میخانه برات ساقی، روزی که برات ما به میخانه برند، آن روز بابد شب برات تا در تن توست استخان و رگ و پی، از خانه تقدیر منه بیرون پی، کردن منه هرخست با بد رستم زار، منت مکشر دوست با بد تی. تا در حبس لب و جام ای، تا در پی آواز دف و چنگنه ای، اینها همه هش است، خدا میداند تا ترک تعلق نکنی هیچ نی